سلام بر همه شما مخاطبان کانال هزار افسان جایی که قصه های کهن جانی دوباره می گیرند امروز داستان زنگ ادالت و مار رو براتون روایت می کنیم داستان و افسانه ای جذاب پس تا انتهای داستان همراه ما باشید زنگ ادالت و مار است از قصه های جن و پری ای که برای یکی از پادشاهان به نام اردشیر ساخته بودند در این روایت از این افسانه استفاده شده از دیگر اشیای ای که در این روایت کار رفته یکی هم کفش و عصای آهنی است که نشان از پیمودن راه طولانی توسط قهرمان داستان است و اما خود داستان پادشاهی بود که بر سردر قصرش زنگی آویخته بود به نام زنگ ادالت هر کس حرفی یا کاری داشت زنجیر رو تکون میداد و اونو به صدا در می آورد روزی صدای زنگ در سرسرای قصر پیچید نگهبان ها رفتن و دیدن ماری دور زنگ پیچیده و اونو تکون میده. پس مار رو به حضور پادشاه بردند و اون به پادشاه گفت در راه به خونه پیرمردی رسیدم که سه دختر داره، یکی از اون دخترها رو میخوام. پادشاه پیرمرد رو احزار کرد و خواسته مار رو به اون گفت. پیرمرد هم گفت هرچی که مصلحت پادشاه باشد همان شود. دختر را خبر کردند و در قصر جشن عروسی برای مار و دختر گرفتند بعد از عروسی مار و دختر راه افتادند و رفتند از شهر که خارج شدند مار جلدش را به کناری انداخت و به شکل یک مرد چهار شانه و قوی هیکل درومد این مرد دو برادر داشت برادر دومی دو وقتی به خونه اومد گفت بوی آدمیزاد میاد مرد پاسخ داد آدمیزاد همسر منه برادر دومی دو وقتی ماجرا رو شنید به جلد گرگ رفت و خودش رو به قسل سلطان رسوند و زنجیر زنگ ادالت رو به صدا در آورد نگهبان او رو به حضور سلطان برد و گرگ هم تقاضا کرد که یکی از دختران پیرمرد رو به زنی به او بدن گرگ هم با یکی از دختران پیرمرد عروسی کرد و دوتایی راه افتادند بیرون شهر گرگ جلدش رو درآورد و شد یک جوان برازنده اونها هم به خونه رفتند چند روز گذشت و برادر سومی از سفر به خونه اومد و گفت بوی دو آدمیزاد میاد برادرانش موضوع رو به اون گفتن او هم به شکل کلاقی در اومد و خودش رو رسوند به زنجیر زنگ ادالت. بعد هم دختر دیگه پیر رو به زنی گرفت و دوتایی راه افتادن. بیرون از شهر مادر عروس از کلاق پرسید خونتون کجاست؟ اصلا تو انسی، جنی، دیوی، کلاق. پاسخ داد یک جفت کفش آهنی پات کن و یک عسای آهنی هم به دست بگیر و رو به خورشید راه بیفت هرجا کفش آهنید از ساییدگی سوراخ شد و عسات هم تا دست سایید به خونه ما رسیدی کلاق این رو گفت و دست زنش رو گرفت و رفت برای پیرمرد فقط یک پسر مونده بود که اون هم به مکتب خونه می رفت. روزی پسر دید مادرش گریه میکنه و علتش رو پرسید. مادر هم موضوع خواهرانش رو با ما و گرگ و کلا گفت. صبح روز بعد پسر یک کفش و عصای آهنی به آهنگر سفارش داد و بعد از مدتی کفش و عصا حاضر شد. پسر اصا رو به دست گرفت و کفش رو پوشید و راه افتاد تا خونه خواهرش رو پیدا کنه. در این راه سالها گذشت. یک روز پسر متوجه شد کفش آهنیش ساییده شده اصاشم از سائیدگی به دستش رسیده. وقتی غروب شد از درختی بالا رفت و روی درخت خوابید. صبح کنیزی سر چشمه اومد تا آب ببره. عکس صورت زیبایی رو در آب دید و سرش رو بالا گرفت و روی درخت چشمش به پسر افتاد. پرسید تو کی هستی و چه کاری؟ پسر از درخت پایین اومد و شرح حال خودش رو برای کنیز گفت و مقداری غذا هم از اون خواست کنیز به خونه رفت و اونچه که دیده و شنیده بود برای خانومش تعریف کرد خانوم گفت حتما برادر من برو و اونو به اینجا بیار کنیز رفت و پسر رو آورد و خواهر برادر خودش رو شناخت و همدیگر رو در آغوش گرفتن شوهران دخترها هم به پسر خوشامد گفتند و از او پذیرایی کردند شب دوم که پسرک مهمان خواهر دومی بود، شوهر بزنش زنش گفت مبادا جای برادرت رو, رو روی پشت بام بیاندازی، اما پسر اصرار داشت که روی بام بخوابه. خواهر رخت خواب اون رو, رو روی پشت بام انداخت و پسر خوابید و خواب چهلگیس رو دید. صبح که از خواب برخواست غمگین و افسرده بود و تا شب لب به غذا نزد. شوهر خواهرش از اون پرسجو کرد و فهمید که پسر خواب چهلگیس رو دیده. برادرانش رو خبر کرد و گفت باید کاری کنیم که پسر به گیس برسه. برادر اولی تیغی روی شانی پسر گذاشت و گفت تا وقتی این تیغ با توست نمی میری. برادر دومو به او عصایی داد و گفت هرچی که بخوای این عصا برات آماده میکنه. برادر سومی گفت چهلگیس خودش رو به شکل گلوله ای در و رفته داخل خورتوم یک فیل نر. این فیل نگهبانشه و وقتی که با فیلهای دیگه برای آب خوردن میره گلوله رو در میاره. همون وقت هم باید تو دست به کار بشیم. بعد از این حرف هم به او یک کیسه سوزن یک کیسه سوزن لهافدوزی و یک کیسه نمک داد. برادرها پسر رو سر چشمه رسوندند و برگشتند. حالا با این جوون که نامش جهانتیخ شده باشیم و ببینیم چی پیش میاد. جهانتیغ رفت بالای درخت و قدری گذشت فیلها اومدند و فیل نر گلوله رو از خورتومش درآورد که آب بخوره جهانتیق از درخت پرید و گلوله رو برداشت و فرار کرد فیلها اول فیل نر رو خفه کردن و بعد هم دنبال جهانتیق رفتن. جهانتیق کیسه رو باز کرد و اونو پشت سرش خالی کرد بعد هم سر کیسه سوزنهای لحافدوزی رو باز کرد سوزنها به کف پای فیلها فرو می اما اونها همچنان میدویدند جهانتیغ این بار کیسه نمک رو خالی کرد فیلها که پاهاشون زخمی شده بود وقتی روی نمک ها راه رفتن پاشون به سوزش افتاد و کمی حرکتشون کند شد اما ولکن پسر نبودند. جهانتیق به اسا گفت که دریایی بین او و فیلها درست کنه. دریایی درست شد و فیلها توی آب افتادند و خفه شدند. جهانتیق به گلول دستی کشید و دختری زیبا که همون چهلگیس بود ظاهر شد. بعد از اصاش خواست که اونها رو به خونه خواهرانش خاهرانش ببرد. خواهرها از اینکه برادرشون صحیح و سالم برگشته بود خوشحال شدند. برای اون 40 جشن عروسی گرفتند و بعد هم همگی به خانه پدر و مادر دخترها رفتند. پیرمرد و پیرزن از دیدن بچه ها عروس و دامادها خوشحال شدند و به ای که گریه کرده بودند خندیدند. و بار دیگه برای جهان تیغ و چهلگیز جشن عروسی گرفتند. امید که از این داستان هم لذت و بهره کافی برده باشید، ممنون که همراه ما بودید در پناه عشق و نور الهی باشید سفر به دنیای پر رمز و راز افسانه ها،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 ادساین مهران دوستی